قصه های صبحی جلد دوم، به روایت فضل الله محتدی ارائه از کانال هزار افسان، مدیریت محمد جواد بوستانی گوینده پریسا سائدی، قصه آزربایجانی این داستان بختیار یکی بود یکی نبود پیرمرد فقیری بود که اسمش بختیار بود روزی از روزها صبح زود پیرمرد بلند شد و به زنش گفت زن من یه مقداری نون ارزن و ماست چکیده میخوام. اون رو تو خورجین من بذار که میخوام به سفر برم زنش گفت این چه فکریه که به سرت زده توی خونه بشین سر پیری چه مسافرتی میخوای بری مگه نون راحت دلتو زده یا کفشت زیادی کرده؟ پیرمرد مرد گفت پیرزن زن، تو تو کاره این دخالت نکن من یک خوابی دیدم، میخوام دنبال اون برم زن گفت ای پیرمرد مرد، واقعا سر پیری اقل از سرت پریده کجای دنیا دیدی که کسی دنبال یک خواب راه بیفته و بره؟ پیرمرد مرد جواب داد ای پیرزا به تو گفتم کاری به این کارا نداشته باش هرچی خواستم حاضر کن و حرف زیادیم نزن پیرزن توشه شوهرش رو تهیه کرد و پیرمرد خورجین رو روی شونش انداخت و به افتاد رفت و رفت تا بعد از چند روز به صحرایی رسید دید توی صحرا یک چوپان داره گله بزرگی رو میچرونه همراه چوپان سگ گله و الاغ هم بود که توشه و اسباب سفر چوپان بار اون بود پیرمرد گفت خدا گله تو رو برکت بده تو ولایت ما میگن وقتی گرسنه شدی پیش چوپون برو تو میتونه غذایی به من بدی نمیدونم چند روز تو مسافرتم نون من کاملا مونده و بیات و خشک شده بی جهت نیست که نون و سفره مهمون نوازی چوپان ورد زبون هاست. چوپان آستین های خودش رو بالا زد و چند میش رو دوشید و یک کاسه پر از شیر به بختیار داد. بختیار نون رو خورد کرد و توی شیر ریخت و خورد و جونی گرفت. خواست راه بیفته. چوپان ازش پرسید رفیق، بگو ببینم از کجا میای و به کجا میری؟ اگر راه تو دور و درازه برای تو مقدار پنیر درست کنم و یک هم بگیرم بختیار گفت من از فلان ولایت و از فلان ده میام نمیدونم کجا میرم که بدونم راهم دور دوره یا نزدیک راستش از زندگی خیری ندیدم اما چند وقت پیش یک خواب خوبی دیدم حالا درم دنبال اون خواب میرم چوپان از این حرفها متعجب شد و گفت ایمو مگه خواب رو هم میشه جستجو کرد؟ انسان هر شب ممکنه هزار تا خواب ببینه. چطور ممکنه که تو او جستجوی این همه خواب باشه؟ بختیار جواب داد. ای پسر من. ممکنه انسان هزارها خواب ببینه و یادی از اونها نکنه. اما این خوابی رو که من دیدم به خاطر اون تو آخر دنیا میرم. برای پیدا کردن این خواب میتونم جون خودم رو هم بدم. چوپان سوال کرد و گفت أمو جان آیا خواب خودت رو به من میفروشی پول خوبی عوضش بهتو میدم پیرمرد به فکر فرو رفت و بعد از مدتی سکوت گفت کار باید بکنم حاضرم بفروشم تو آدم خوبی هستی به علاوه جوونی ممکنه زودتر از من به پیدا کردن این خواب موفق بشی خواب خودش رو برای چوپان حکایت کرد و در عوض خواب تمام گله و سگ و الاق اون رو با تمام لوازمش گرفت در ضمن نام خودشون رو هم با هم عوض کردن چوپان به اسم بختیار نامیده شد و بختیار اسم چوپان رو که ملک محمد بود روی خودش گذاشت از همدیگه جدا شدن و هر کدوم راه خودشون رو پیش گرفتن چوبان که بختیار شده بود خرجین خودش رو روی شانه انداخت و تا سو به چشمش بود و قوت به زانه هاش رفت. اما ملک محمد با گله آهسته به خونه خودش ره شد. اومد و اومد و به ده خودش نزدیک شد و به خونه خودش رسید. زنش اون رو دید و شروع به کرد و گفت ای وای پیر مرد این گله مالکی که تو داری میاریش فجالت نمیکشی؟ تمام همسایه ها تو را انگوش نما می, می گن ببینین بختیار تو این سن و سال به چوبپونی مشغول شده پیرمرد گفت زن؟ داد نزن من چوبپون کسی نیستم این گله متعلق به خود منه اونو با خواب خودم عوض کردم اینم بدون اسم من دیگه بختیار نیست من ملک محمدم در اینجا دیگه پیرزن به کلی متحیر شد و گفت اینگار من اشتباه کردم و یکی دیگر رو به جای شوهرم گرفتم. بعد به پیرمرد چنین گفت. ببخشید که من با شما اینطور حرف زدم، شما خیلی به شوهر من شبیهین. من خیال کردم شما شوهر من این. ببخشید. پیرمرد قبلا میدونست که عقل زنش یک مقداری گرده. لیکن دیگه یقین حاصل کرد که به کل عقلش رو از دست داده. گفت. ای زن؟ تو به کلی دیوونه شدی. مگه من شوهر تو نیستم؟ من به تو میگم خواب خودم رو با این گله عوض کردم. اسمم عوض کردم. این منم من. فقط چیزی که هست قبلا من بختیار فقیر بودم. حالا ملک محمد متومولم. بالاخره زن متوجه موضوع شد و شروع به شمردن گوسفندها کرد. پیرمرد هم پهلوی اون ایستاد و به گوشش گفت ببین پیرزن معلوم شد که من بی جهت به دنبال خواب خودم نرفته بودم درسته که من خواب خودم رو پیدا نکردم اما در عوض ثروت و دارایی به دست آوردم این پیرمرد و پیرزن رو در خوشبختیشون رها کنیم و ببینیم بختیار چی کرد به نظرتون چی شد بختیار آهسته آهسته از کوه ها و دره ها گذشت و بالاخره به کنار شهری رسید. اوایل شب بود و دروازه های شهر رو بسته بودند. بختیار هرچی چی دروازه را زد و هرقدر خواهش کرد، دروازهبان راهش نداد و در رو به روش باز نکرد. بختیار ناچار تو اون هوای خنک آزاد دراز کشید و به خواب بختیار بر حسب عادت چوپانی به خودش پیچید و زانوهاش رو به چونش چسبند و سر خودش رو تو شونهاش فرو برد و به خواب امیقی فرو رفت. های شب بود که انگار فهمید کسی داره صداش میکنه. بختیار، بختیار، بیداش و بختیار. بختیار یکو بلند شد. به راست و چپ و جلو و به آسمون نگاه کرد. بالاخره دید که یک نفر بالای دیوار دروازه شهر ایستاده و با صدای رسا داره به اون میگه بختیار چرا عجله نمی کنی صبح نزدیکه خورجینت رو بردار الان من پیش تو میام بختیار تعجب کرد و با خودش گفت این کیه که توی شهر قریب منو میشناسه و اسم منو میدونه البته اگر شخص اسم دیگه اختیار کنه سرنوشت اون هم عوض میشه. بختیار نزدیک دیوار اومد و خورجین سنگین رو به دست گرفت. منتظر بود تا ببینه بعد چی میشه. یک دفعه دروازه شهر باز شد و شخصی که تا بیخ گوش هاش توی عوافر رو رفته بود با دو تا اسب بیرون اومد. اون شخص ناشناس به بختیار گفت: "زود خورجین خودت رو به گردن اسب ببند. ممکنه که تو قصر بفهمن و ما رو دستگیر کنن و بکشن چند دفعه تو رو صدا زدم تا بالاخره بیدار شدی سوار اسب شد و به تاخت بریم زود باش بختیار به کلی رشته ی فکرش رو از دست داد ابدا نفهمید که کجاس و از چی باید فرار کنه این آدم کیه از کجا اسمش رو میدونه اما وقت صحبت نبود خودش رو به سرنوشت سپرد و فوراً سوار اسب شد. با همسفر خودش به تاخت رفتن و تا صبح بدون استراحت تاختند و تاختند و تاختند. وقت صبح بختیار دید که همسفر اون دختر بسیار زیباییه. اونقدر زیبا که انسان از دیدن صورتش سیر نمیشه. دختر زیبا هم به بختیار نگاه کرد و از تعجب بی اختیار آهی کشید ازش پرسید تو کی؟ اسم چیه؟ بختیار گفت خانوم مگه فراموش کردی که من کیم؟ تو شب تاریک تو منو صدا زدی حالا اسم منو فراموش کردی؟ دختر گفت پس معلوم میشه اسم تو هم بختیاره بختیار گفت خانوم مگر کسی دیگه هم بوده که این اسمو داشته باشه مگه تو منو صدا نمی کردی؟ دختر گفت من تو رو صدا نمی کردم. ای جوون بدون که من دختر پادشاه این مملکت هستم و اسم من زرنگار خانومه وزیر پدر من پسری داره که اسمش بختیاره ما هر دو هم دیگر رو دوست داریم اما پدرم راضی نشد که من رو به بختیار بده اون می خواست من رو به پسر وزیر دیگه خودش بده ولی من نمی خواستم و اون ازدواج کنم به همین خاطر با بختیار قرار گذاشتیم تو نیمه شب موقعی که همه قصر توی خوابن با هم فرار کنیم. حالا معلوم میشه كه که اون یا ترسیده یا اتفاقی براش افتاده. سرنوشت تو رو به این محل که من منتظر اون بودم آورده. اتفاقا نام تو هم با نام اون یکیه. بخیال که تو هم همون بختیار هستی با تو فرار کردم. معلوم شه مقدر من چنین بوده. حالا دیگه هرچی زودتر باید از مبلکت پدرم دور بشید. این رو گفت و عصب خودش رو به سرعت روند. بختیار هم با اسب آنچنان تاخت که باد به اونها نمی رسید. موقعی که اونها به پای تخت کشور آبادی رسیدند، آفدا پشت کوها پنهون شده بود. در مقابل سکه های تلایی که دختر تو خورجین گذاشته بود، خونهی با وسیعی که گلکاری های خوب و حوزهای فوارداری داشت خریدند. بختیار لباس چوبپونی خودش رو در آورد و لباسی فاخر پوشید. اونقدر زیبا و قشنگ شد که اگر پادشاه اون رو میدید ممکن نبود خیال کنه که اون چوپون بوده. قاضی محل زرنگار رو با بختیار عقد بست و اونها در اون خونه شاد و خورم، مشغول زندگی شدن. هنوز خوابی رو که بختیار خریده بود پیدا نکرده بود که دفعتا متمول شد و مثل خواب به اقبال خودش رسید. اما اقبال مثل پرنده است. الان با توی و در یک لحظه ممکنه از تو روگردون بشه. کار بختیارم هم همینطور شد. یک روز بختیار خواست که سرش رو سلمانی شاه به نمیخواست که یک سلمانی معمولی این کار بکنه. سلمانی شاه پیش اون اومد. به اشتباه از در دیگه وارد شد و دفعتا زرنگار خانم رو دید و از دیدن جمال زیبای اون دختر مدهوش شد و به زمین افتاد. همین که به حوش اومد به خودش قالب شد و سر بختیار رو تراشید و فورا پهلوی شاه رفت. در تمام قصر داد و فریاد بلند کرد تا خودش رو به شاه رسوند و گفت پادشاه ها ای کاش تخت تو سرنگون میشد کاش زین تو غرق خون میشد چرا تو خواب رفتی چه فکری میکنی شاه سوال کرد که چی شده چه اتفاقی افتاده سلبونی شروع به حکایت کرد و راجب اون دختر زیبایی که زن مرد غریبی شده تعریف ها کرد چنان حکایت کرد و طوری تعریف کرد که پادشاه مبهوت شده و عاشق دختر شد و از زندگی بیزار. وزیر خودش رو صدا زد و گفت: وزیر، چیکار باید کرد؟ سلاح و چی میدونی؟ من باید این دختر رو ببینم. وزیر گفت: پادشاه سلامت باشه. آسان تر از این چیزی نیست. بختیار رو دعوت کنید و بگید فردا ظهر رو مهمان تو هستم. اما خودتون یک ساعت قبل از وقت حاضر بشین. جوری وارد بشین تا اون زن رو ببینید. شاه مصلحت وزیر رو پسندید. فورا امر کرد که عقب بختیار برن و وقتی بختیار اومد شاه گفت خوش اومده غریب امیدوارم کسی به تو رنجی نرسونده باشه. شنیدم که تو شخص خیرخواهی هستی. به این جهت میخوام به تو محبتی کنم. فردا منتظر من باش. زهر مهمان تو هستم بختیار غمگین شد و پس از اون که به منزل برگشت نه نون میخورد و نه آب و نه حرفید زن زن بختیار گفت بختیار قربون تو برم بگو چی شده وقتی که تو رو دار میبینم زندگی برای من تلخ و حروم میشه شاید دیگه منو دوست نداری اگه اینطور باشه من چه خاکی به سرم بریزم تو ولایت قربت از بین میرم. بختیار در جواب گفت ای نگار خانم قشنگ چون نمیتونم قصه خودم را از تو پنهون کنم پس راز خودم رو را به تو میگم. خطری متوجه ماره پادشاه میخواد نسبت به من مرحمت کنه و به منزل من مهمون بشه. من به لطف اون چه احتیاجی دارم. بدون مرحمت پادشاه هم زندگی من خوبه. چرا شاه میخواد مهمون من بشه مگر چاگلوس ها و متملخ های دربار برای اون بس نیستن؟ وقتی که زرنگار خانم این حرف های بختیار رو شنید قلبش تپید و فورا درک کرد که شاه میخواد اون رو از بختیار جدا کنه. ولی فکر خودش رو فاش نکرد و به خوشحالی گفت بختیار فدای تو بشم چرا انقدر غمگینی مگه اومدن شاه به منزل ما اسباب بدبختیه؟ برعکس وقتی که مردم بشنبن که شاه به منزل تو اومده بیشتر به تو احترام میکنن زودتر به بازار برو و مقداری برنج و چند تا مرغ تهیه کن باید پادشاه رو مطابق آداب و رسوم پادشاهی مهمان کنی قم فردا رو بزار برای فردا